شهان دیگر از هر جایگاهی فرستادند رامین را سپاهی سپهدار بزرگش بود ویرو وزیر و قهرمانش بود کیلو شاه موبد به سی رو بودن گنجها را به دست رامین شنید سخت برا شفت. تدبیرها کرد و سرانجام بران شد که با رامین کارزار جوید اما عجل مهلتش نداد و به دست گرازی که میان لشکرگاه او درآمده بود به حلاکت رسید چو آگاهی به لشکرگاه بردند بزرگان شاه را آگه نکردند کجا او پا بود بدخور وزین بدتر شهان را نیست آهو نگارستیچ کس او را بگفتن همه کس رای دیدان را نهفتن سر روز این راز من از وی نهفته تمامی کار رامین شد شکفته چو آگه شد جهان بر وی سر آمد تو گفتی رستخیز او برآمد ندانستی چگونه چاره خیش تو گفتی بسته شد راهش پس و پیش گهی گفتی که گر من بازگردم به زشتی در جهان آوازگردم مرا گویند گشت از رام ترسان وگرنه نامدی سوی خراسان گهی گفتی که گربا وی بکوشم ندانم چون دهد یاری سروشم سپاه من همه با من بکینند به شاهی پاک رامین را, را جوان است او هم بختش جوان است درخت دولتش تا آسمان است به دست آورد گنج من سراسر منم مفلس کنون و او توانگر نخوردم اون همه نعمت ندادم زبهر او همه برهم نهادم مرا مادر بدین پتیاره افکند که بر رامین دلم را کرد خورسند چون این افتاد تدبیرش به فرجام که با رامین بکوشد کام و ناکام همین ننگ آمدش برگشتن از جنگ ز گرگان سوی آمل کرد آهنگ جهان را گرچه بسیار آزماییم نهفته بند رازش چون گشاییم جهان خواب است و ما در وی خیالیم چرا چندین در وماندن سگالیم نگاه مهر نیک از بد بداند نه مهر به سر بردن تواند ندانم چیست این گشت زمانه و زو بر جان ما چندین بهانه جهانداری شهنشاهی چموبت جهان را زو بسی نیک و بسی بد بدین خاریش باشد روز فرجان بماند در دل و چشمش همه کان کجا چون برد لشکرگه به آمول همیشب خورد با آزادگان مل میهان را سر به سر خلعت فرستاد که آن را ساز جنگ و سیم و زر داد شب بود از می مست و شادان خمارش بین که چون بود بام دادان نشسته شاه با گردان لشکر برآمد ناگهان بانگی ز لشكر گرازیز یکی گوشه برنج است زتندی همچو پیلی شرزه و مست شهنشه از سراپرده برآمد به پشت خنگ چوگانی درآمد به دستندر یکی خشت سیح پر بسی بدخواه را کرده سیاه در چو شیر نر بران خوک دجم تاخت سیه پرخشت پیچان را بینداخت خطا شد خشت او وان خوک چون باد به دست و پای خنگ شه بر افتاد خنگ و شاه با هم چو بست گشت چرخ و ماه با هم درید از ناف او تا زیر سینه درید گشت جای مهر و کینه سرامد روزگار شاه شاهون سیه شد روزگار نیک خواهان چنان شاهی به چندین کامرانی نگر تا چون تبه شد رایگانی جهانا من ز تو ببرید خواهم فریب تو دگر نشنید خواهم نگر تا هست چون تو هیچ سفله که یک یک داده بستانی به جمله تو را گر جافدان بینم همینی همین چرخی همین آب و زمینی پس از درگذشت شاه موبات رامین دهیم شهریاری بر سر نهاد و دور زندگانی را در کنار ویس به شادکامی سپری کرد آنان را دو و فرزند دلبند آمد که جمشید و خورشیدشان نام نهادند چو آگاهی به رامین شد زموبات که او را چون بر دختر بد نهانی شکر دادار جان کرد که او فرجام موبد را چنان کرد نه جنگی بود مرگش را بهانه نه خونی ریخته شد در میانه هزاران سجده بردو پیش دادار همی گفت ای به جان من نکو تو یاری یاری هم در پادشاهی که یاری دادنم را خود تو شای ببن در پادشاهی داد فرمای به درویشان ز احسان کام بخشای چو هر شهری به شاهی داد گرداد نگهبانی به هر مرزی فرستاد راه افتاد بالاشکر سوی مرو کجا دیدار او بود داروی مرو ها بود بر وی آفرین خان چو دلها در وفای وی گروگان چو در مرو گزین شد شاه رامین بهشتی دید در وی بست آزین بدین رامش نخود مروه گزین بود کجا یک سر خراسان همچنین بود زموبت سالیان سختی کشیدند پس از مرگش به آسانی رسیدند چو از بیداد او آزاد گشتند به داد شاه رامین شاد گشتند همه ویران آباد کردند هزاران شهر و ده بنیاد کردند دو فرزند آمدش زن ماه پیکر چون مامک خوب و چون بابک دناور دو خسرو نامشان خورشید و جمشید جهان در فر هر دو بست امید زمین خاوران دادش به خورشید زمین باختر دادش به جمشید سالها پیاپی گذشت ویس که به پیری رسیده و زلفان مشکین فامش همچون شیر گشته بود بیمار شد و دیری نپایی که دیده از دیدار جهان فروب است آنگاه رامین اورنگ شهریاری پسرش جمشید را سپرد و خود تا روز مرگ در آتش ای مجاور گشت با رامین بدو هشتاد و یک سال زبی دردی نماند از مشک او خال سر سرو صحی شد گونه دوتا شد پشت او همچون درونه کرا دشمن نباشد در جهان کس چو بینی دشمن او خود جهان بس. اگرچه ویس از گیتی وفادید، دید، همو از گردش گیتی جفادید. دید چونان با گردش گیتی زبون شد که هفتندامش از فرمان برون شد پسانگه مرگ ناگه از کمینگاه بیامد در ربودان کاست ما دل رامین به دردش کان غم شد همیدون چشم رامین زان دو شد همی گفت ای گزیده جفت نامی تنم را جان و جانم را گرامی مرا با داغ تنهایی بماندی. تو خود خنگ جدایی را براندی ندیدم در جهان چون تو Bowdoin یز روزی از من بر نگم از کرده خود کرده چرا از عهد خود کرده بگشتی و فارا با جفا در همسره No. شگفتی نیست گربات و جفا کرد زمان در جهان با که وفا کرد مرا بس بود بر دل درد پیری نهادی بر تنم درد اسیری شکی با ایز پیران سخت نیکوست به در فراغ جفت یا دوست زبانم گر شکیبایی نماید دلم در شکیبایی فضاید چو دل را دارم از تیمار پر زبان را دارم از گفتار خامش پسانگه دخمی فرمود شهوار چون شایست جفتی را سزاوار برآورده از آتشگاه برزین رسانیده سر کاخش به پروین چو آتشگاه و از دخم بپرداخت بسیج جهان بنگر که چون ساخت پسر را خواند خورشید مهان را همیدون خسرو فرماندهان را پسر را پیش خود برگاه بنشاند پس او را خسرو و شاه جهان خواند فرود آمد ز تخت خسروانی به دخمه شد به تخت آن جهانی گهی در دخمی دل برنشستی شبان روزی به درد دل گرستی گهی در پیش یزدان لابه کردی گناه کرده را تیمار خردی شبی از دادگر پوزش همی جوست همه شب رخ به خون دل همی شست اندرتن تن توانایی نمندش گه شبگیر یزدان پیش خوندش. تنش را هم به پیش ویس بردند دو خاک نامور را جفت کردند رسند ما آشنایی با خداوند سرائی را که در وی یک زمانیم درو جویای ساز جاودانیم چما از رفتگان گیریم اخبار زما فردا خبر گیرند ناچار خبر گردیم و ما بوده خبرجوی سمر گردیم و خود بوده سمرگوز نوشته با تنظیم نادر وزینپور همکاری حایده، وفایی سیمین، سرخوش، مجید نجاهی، یوسف زمانی، رحمانی پور، همدانیان، افگرپور، فریدون اسماعیلی، ظفیره داداشیان، ازرا، شجره رضا معینی و آذر پژوهش سیغی از علی تجبیدی تهیه کننده برنامه منوچهر خلیقی زیر نظر امیر فریدون گرکانی